به نام خدا کتاب افسانه های مشرق زمین به ترجمه محمد عبادزاده کرمانی از انتشارات قصه جهان نما صوتی شده توسط کانال تلگرامی هزار افسان به مدیریت محمد جواد بوستانی گوینده فاتیما افشار این داستان معبد بوکیتیانگ بوکیتیانگ تپه‌ای بود تو یکی از چهرهای کشور مالزی که بالاش معبدی وجود داشت که یک کشتی کوچیک بالای این معبد قرار داشت و من توی این داستان میخوام بهتون بگم که چرا این کشتی بالای معبد بود. سالهای خیلی قبل، حلیما و پسر کوچیکش علی کنار رودخونه نزدیک به تپه بوکی زندگی میکردند. پدر علی مرده بود و حلیمه برای گذروندن زندگی خودش و پسرش مجبور بود خیلی سخت کار بکنه. دیگه همه مردم دهکده میدونستند که حلیمه برای به دست آوردن غذا و لباس و مایحتاج زندگیشون نیاز به کار داره و به خاطر همین برای پیدا کردن کار بهش کمک کردن. با همه این سختی ها حلیمه از زندگی با پسرش علی خوشحال و راضی بود و آشغ پسرش بود با تلاش و زحمت های زیاد حلیمه علی کم کم بزرگ شد و جوان قوی و نیرومندی شد همه امید و علاقه حلیمه همین فرزندش علی بود حلیمه روزا زودتر از اون بیدار میشد شد آماده میکرد و شب هم بعد از گفتن قصه وقتی که مطمئن می که علی خوابیده. به استراحت میپرداخت. یه روز وقتی علی زحمت های مادرش رو برای گذروندن زندگی می بینه سخت به فکر فرو میره و به مادرش میگه مامان عزیزم، تو دیگه پیر و خسته شدی. حالا که من بزرگتر شدم، تو میتونی استراحت کنی. من میخوام بعد از این به جای تو کار کنم. اجازه بده از دهکده به شهر برم و کار پیدا کنم تا بتونم به تو کمک کنم. من تصمیم گرفتم که به شهر برم و شب و روز کار کنم و ثروتمند بشم بعد پیش تو برگردم و یه خونه بزرگ و زیبا درست کنم. علی هم چنان از آرزوهاش میگه. میگه من میخوام ثروتمند بشم و یه خونه بزرگ با یه باغ قشنگ و چند تا خدمتکار برای تو بسازم. تو این زندگی با همدیگه خوشبخت بشیم. حلیمه از حرفای علی ناراحت میشه و بهش میگه پسرم از پیش من نرو. منو تنها نذار. من خونه و باغ و خدمتکار نمیخوام. همین که تو پیشم باشی خوشبخت و راضیم. اما علی اصرار میکنه که به شهر بره و مرد ثروتمندی بشه. به خطر همین به های مادرش اصلا توجه نمیکنه و مادرش با های گریون اونو بدرقه میکنه تا به سمت شهر بره با همه عشق و علاقه ای که به فرزندش داره دور شدنش رو از خونه می‌بینه ولی باور نمیکنه آخه این اولین جدایی بین این مادر و فرزند بود علی توی شهر به کار و فعالیت مشغول شد. هر کاری که بهش میدادن به بهترین شکل انجام میداد. کم کم کارهای مهمتر و پردرآمدتری به دست آورد. علی پول زیادی به دست آورد. علی در شهر به کار و فعالیت پرداخت. هر کاری که بهش میدادن به بهترین شکل انجام و کم کم کارهای مهمتر با درآمد بیشتر بهش میدادن. علی پولایی که به دست می‌آورد را پسنداز میکرد و ثروت زیادی رو جمع کرده بود. توی اون شهری که زندگی می‌کرد، یه تاجر معروف و ثروتمندی زندگی می‌کرد به اسم یوسف. یوسف از معتبرترین و ثروتمندترین اهالی شهر به حساب میومد همه مردم و تجار هم از اون به خوبی می‌گفتن و احترام زیادی براش قائل بودند. یوسف مثل پادشاه توی قصر بزرگ و زیبا زندگی میکرد و یه دختر زیبایی هم به اسم فاتمه داشت. علی آوازه ثروت و شهرت این مرد رو شنیده بود و خبر داشت که دختر زیبا به اسم فاتمه داره. به خاطر همین تصمیم گرفت که به خونه اونا بره و از دخترش خاستگاری کنه. علی با خودش میگه یوسف مرد ثروتمند و سرشناسیه. اگه من با دخترش ازدواج کنم منم خوشبخت میشم. دیگه اون پیر و ناتوان شده و به زودی میمیره. منم جانشینش میشم و با شکوه و جلال زندگیمو ادامه میدم. با این فکرها علی به خاستگاری فاطمه می میره. یوسف هم که علی رو جوان قوی و نیرومندی میبینه با ازدواجش با دخترش موافقت میکنه خیلی زود یه جشن باش و توی شهر بپا میکنن و علی و فاطمه با هم ازدواج میکنن علی یه کشتی زیبا و مجللی رو میخره و پیش فاطمه میاد بهش میگه که فاطمه بیا با هم به مسافرت بریم با این کشتی بزرگ و زیبا از رودخونه‌ها، دریاها و جزیره‌ها و کشورهای مختلفی دیدن می‌کنیم و از طبیعت لذت می‌بریم. فاطمه پیشنهاد علی رو قبول میکنه، و سوار کشتی میشن و مسافرت خودشون شروع می‌کنن. اونها از جزیره‌ها، شهرها های زیادی دیدن میکنند با مردم نواحی مختلفی آشنا میشن توی یکی از مسیرها اونها به رودخونه‌ای نزدیک بوکی میرسند. میرسن فاطمه که قصه زندگی علی رو میدونه بهش میگه که اینجا محل تولد توه درسته تو کودکی و جوانی تو اینجا گذروندی اینجا خیلی زیبا و خوش آب و هواس علی جواب میده آره حق با توه اینجا خیلی زیباست. فاطمه از علی میپرسه آیا مادر تو هنوز اینجا زندگی میکنه؟ وقتی پاسخی از علی شریده نمیشه ادامه میده که فکر میکنم که اون هنوز اینجا زندگی میکنه. بیا پیشش بریم. قطعا اون از دیدن منو تو خیلی خوشحال میشه. مخصوصا که خیلی ساله است تو خبری نداره. با این پیشنهاد هر دوشون به سمت خوشگی میرن توی مسیر خونه قدم برمیدارن. حلیمه توی راه فرزندش رو از دور می‌بینه. با خوشحالی داد میزنه علی پسرم، کجا بودی؟" و به سوی اونها می‌دوه. آغوشش رو باز می‌کنه تا پسرش رو توی آغوش بگیره. اشک شوق فرزند توی چشمای حلیمه حلقه زده بود. اما وقتی که علی حال و روز مادرش رو می‌بینه، از ناراحتی و افسوس سری تکن میده چون مامانش پیر و ناتوان بود و لباسهای کهنه و داری پوشیده بود علی اون رو از آغوشش دور میکنه و به خاطر داشتن همچین مادری احساس شرم میکنه علی مادرش رو از خودش جدا میکنه و به همسرش میگه این زن که مادر من نیست مادر من مرده مسئله این زنو نمیشناسم. اون خودش رو به جای مادر من معرفی میکنه تا از موقعیت و ثروت من رو استفاده کنه. علی با بیرحمی تمام مادرش رو از خودش دور میکنه، به خواهش ها و التماسهای مادرش توجهی نمیکنه و همراه همسرش به کشتی برمیگرده. حلیمه برای دومین بار شاهد جدایی از فرزندشه. با چشمایی پر از عشق اونها رو نگاه میکنه. شب بیداریاش، سخت کار کردناش، ناز و نوازشهاش رو به خاطر میاره. با دلیش شکسته خودش رو بالای تپه بوکیتیایی میرسونه. دستش رو به آسمون دراز میکنه و میگه خدایا تو شاهدی که چه جوری پسرم منو پیش همسرش خار و ذلیل کرد. سالها چشم انتظار اومدنش بودن. اما اون دل منو شکست و رنج این سالها رو ندیده گرفت خدای من تو خودت جزاشو بده من اونو نفرین میکنم حلیمه بالای تپه با ناله و زاری از گذشته و رنجهاش میگه که یهو ابر سیاه و بزرگی آسمون آبی رو میپوشونه و یه رعد و برق بزرگی از دل ها بیرون میاد به دنبال اون سائقه های وحشتناکی صورت میگیره. کشتی بزرگ و زیبای علی آتش میگیره. آب رودخونه به در درآمده بود و باران سیلاسایی میبارید. می‌بارید. دریا نوردا با تلاش زیادی موفق شدن فاطمه را از بین موجای رودخونه نجات بدن اما علی بین موجای رودخونه غرق شد. بعد از اون کشتی زیباش هم داخل اعماق آب ناپدید شد فاطمه با از دست دادن شاعرش ناراحت و افسرده پیش حلیمه برمیگرده حلیمه با اینکه از رفتار فرزندش ناراحته اما وقت راضی به مرگش نبود اما تقدیر اینطوری میخواست و این اتفاق افتاد بعد از گذشته مدتی فاطمه و اهالی دهکده معبد رو بالای تپه بوکیانگ بنا می کنند و کشتی کوچیکی رو بالای اون نصب می کنن که فرزندایی که بعدن به دنیا میان قدر رو منزلت مادران خودشونو بدونن و هیچ وقت محبتای مادرشون رو فراموش نکنند و وقتی مادرشون پیر و ناتوان میشه اونها رو دوست داشته باشن فاطمه با از دست دادن شوهرش، دارا و افسرده پیش حلیمه برمیگرده. حلیمه با اینکه از رفتار فرزندش ناراحت بود، اما وقت راضی به مرگش نبود. اما خدا اینو خواست و این اتفاق افتاد. بعد از گذشت زمانهای زیادی، فاطمه و اهالی دهکده معبدی رو بالای اون تپه بنا کردند. و کشتی کوچیکی رو بالای اون نصب کردند تا درس عبرتی باشه برای فرزندایی که بعدا به دنیا میان تا قدر و منزلت مادرای خودشونو بدونن و هیچ وقت توی پیری و ناتوانی اونا رو فراموش نکنن.